بسم الله الرحمن الرحیم الثالث المعتل اللام قبلا گفتیم که معتل بر حرف نو هست الان رسیدیم به سومین نوعش الثالث المعتل اللام سومین نو معتل اللام هست اونی که لام الفیلش حرف عله باشه مانند رما که لام الفعل الف منقلبه است علیفی که در یا بوده یا دعا و یقال له ناقصو بش ناقص گفته میشه و ذو الاربعه ذو الاربعه هم بهش گفته میشه ذو یعنی دارای یعنی صاحب الاربعه یعنی چار من گوش دارای چار حرف هست چی جایی؟ لیکون ماضیه الاربعه احرف اضا اخبرت ان نفسشه. به خاطر که مازیش چار حرف داره زمانی که در مورد خودت خبر دهی، یعنی به متکلمش ببری. متکلم مانند غذا نح نحو غذا و تو با هم میشن چند حرف چهار قاین، زا واب و تا. پس در این سیغه چون چار حرف دارد بش میدن زل اررب. صاحب چار و رمیت غزوتور رمیت درسال ورده. فالمجرد تقلب الواو و الیا منه ألفا اگر تحرك تا و ما قبله ما. در مجرد الواو و يا تبديل به ألف مثالند زمانی که الواو و يا حرکت داشته باشند و ما قبلشون فتحه داشته باشد یعنی بر عبارت فعله باشند مانند از غزو که در اصل غزا و که میشه غزا از مصدر رمی میخوایم مازی ماضی درست کنیم میشه رمیه که میشه رم پس رمیه و غزوه چون واویا متحرکند ما قبلشون حرکت دا فتحه دار تبدیل به علیق بیشند بیشه غذا و رما و عصا و رحا و کذالک زائدو الالثلافتی همچنین اونی که بیش از حرف داشته باشد یعنی حرف زائد توش باشد همدون مزیدها من کل که اعطاه در اسب بوده اعطاوه که اعطا اشترا استقصا اینا همشون در اشترا یا متحرک که ماقم مفتوح تبدیل به عرف شده وَكَ اسم مفعول والمشتَرَى والمستقصاء هنا هم شو؟ اسمه مفعول ها السنة أزينة وكذا الى إذا لم يسمى الفاعل من المضارعي كقولك وهم شو مجهول در مضارعي مجهول هم حرف اللي تبدل بعلف مشي كقولك ط. در اصل بوده یا تا وح. چون و در درجه چارم قرار گرفته یعنی حرف چارم قرار گرفته این قانون هست هرگاه وح حرف چارم باشد و ما قبلش زمه نباشد تبدیل به یا میشه و یای متحرک ما قبل هم تبدیل به علف میشه بس در اصل اصل بوده یع تا و بعد شده یع تیا ولی یا مترک ماقب مفتو تبدیل به الف شده شده یع تا و یورما هم چونین هستند و اما الماضي اما در ماضی فتحذف اللام منه فی مثال فا فعلو فعلو مطلقا میگه در ماضی در سیغه در جمع مذکر غائب چی بر وزن فعله باشه چی بر وزن فعله چی بر وزن فعله مطلقا لاملفل ملفل میشه ماننده رما رمایا در حس میشه رمایو که لامالفعل در این سیغه مطلقا حس میشه میشه رماو این بر وضن فعله بود بر وضن فعله هم اگر باشه حس میشه مانند رزیا رزیا رزیو که یا حس میشه میشه رزو پس رزیا رزیا ردو و اگر بر وزن فعوله هم باشه در این سیره هست میشه مانند سرو سروا سروو که میشه سرو پس یکی از قواعد بسیار مهم در باب ناقص همین هست که در جمع مذکر غائر جمع مذکر غائر لاملفیل ملفل حس میشه چه بر وزن فعلا باشد چه بر وزن باشد چه بر وزن فعلا. در جمع مذکر حس میشه و فی مثال فعالت و همچنین در فعالت یعنی اون ناقص هایی که بر وزن فعلا باشند در مفرد مؤنث لام الفعل هست میشه اما اگر بر وزن یا فوله باشه دیگه حس نمیشه پس در مفرد مونس و در مصنع مونس لام الفل باز هم حصف میشه ولی به شرطی که بر وزن فعلا باشه مانند رما و دعا رما رمایا رماو رمت رمتا دیگه نمیگیم رمیت رمیتا رمایت بلکه یا هم در جمع مذکر هم در مفرد مونس و هم در مصنع مونس غایب حصف میشه ولی زمانی که در مفرد موانس و در مصنع موانس به شرطی که بر وزن فعاله باشه اگر بر وزن فعیله یا فعوله بود حصف نمیشه خودش میگه ایزا فتح ما قبلها زمانی لاملفل حصف میشه که ما قبلش فتحه داشته باشه رمت رمیت در اصل بوده یعنی قبل از لاملفل فتحه است رمت و تثبتو فی غیرها. اما اگر ما قبل لام الفل فتح نداشته باشد، غیر از فتح باشد، لام الفيل ثابت موند. فتح دار ماننده غزا، غزا غزو، غزت، غزتا. غزونا، غزوتوما، غزوتوما، غزوتوما، غزوتونا، غزوتونا، غزوتو، غزونا. غزوتو غزوتو غزوتو غزوتو غزوتو غزوتو غزوتو اما، در رضیه ببینید رضیه رضیه رضو رضیت می‌بینیم که یا در مفرد موننس حصف نشده چرا؟ چون قبل لا ملفل کسره دارد و همکنین در سرو و سرو و سرو سرو و سرو و, سرو و تا اینجا هم حصف نشده پس این قاعده بیست کرد مهمید در جمع مذکر غائب لا ملفل حصف میشه در مفرد مهندس و مسننای مهندس به شرطی هست میشه که برونه فعلا باشد و قاعده دیگر این هست که در غذا حرف الل تبدیل ر الف شده غذا و بوده که شده غذا میگه در سیغه بعدی دوباره وام برمیگرده. غذا غذا و غذا و که در غذاو هست شده و در غذات هم حف هست در غذا هم که حف هست، توضیح دادیم الان دوباره در غذا ها و نه غذا غذاتون ما غذاتون غذا غذاتون ما غذاتون نه غذا تو غذا و نه. اگریی باشد یا دوباره به اصلش برمیگرده. مثل رما رمیا در ر که ح هست در رمت ح هست در رم هم حف هست، رم رممه رمهتون ها رمتون رم رمتون رممیتون نه نه. رض یا ض ها در این سیه یا حف هست، در رضيات حسنید چون برواسن فاعله است. رضیت، رضین، رضیت، رضيات رضینا رضیت رضیتما رضیتون رضیت رضیتما رضیتون رضیتون رضیتون رضیتون رضینا در سروه همچنی سروه سروه سروه در عشر ولی لام الفاعل حسن شده شده سروه سروات دارين حسب نشش توين بر وزن فعلت سروات سرواتا سرو سرولا سبوت سروت مسروتون سروتي سروت مسروتون نسروت سرولا خد ي مساله ديگه يكي ميخواد مطرح كنه اين هست وإنما فتحت ما قبل وا بالضمير في غزو والراب وضممت ما قبلها في ربو وسرو میگه در جمع مذکر غائب زمیر واف در غزو و رمو ما قبل زمیر رو فتحه دادی و انما فتحت ما قبل واف واف الزمیر فی غزو و در غزو و رمو میگه فتحهش دادی و ضممت ما قبلها فی رضو و سرو در حالی که در رضو و سرو زمش دادیم ما قبل زمیر رو در صرفشون غزا غزا, غزا غزاوا غزو اما در رزیه میگیم رزیه رزیها رزو اینو جواب میده میگه لان واو ضمیر اذا اتصل بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن فتح ما قبلها ابقيا على الفتح میگه برای این که واو ضمیر زمانی که متصل به فعل ناقص بشه بعد از حس فلان خب در جمع مذکر غائب لام الفعل حس میشه میگه اگر در قبلا فتحه داشته غزا سر جاش باقی مونه فا این فتح ما قبلها اگر ما قبل لام الفعل فتحه داشته باشد سر جاش باقی موند فتحه ولی و این ضم او کسره اما اگر ما قبل لام الفعل یا کسره داشته باشد بمه در این دو حالت زمه داده میشه در رضیه ما قبل لام الفعل کسره است پس بعد از اینکه لام الفعل حذف شد ذمه داده میشه رضیه رضیه رد و همچنین زمانی که ذمه باشد مانند سر و سر و سرو و سرو و ربو اصل ربو ردیو اصل ربو ردیو بوده ردویا ردویا ردیو دیگه ولی یا حس شده ربو شو میشه فنقیلت مامت الیا الى بعد میگه زمه یا ردیو به ماقم داده میشه و یا هم حس میشه به علت التقاء ساکنه در جمع مذکر غایر همتقاء ساکن پیش میاد ولی املفیل حسمش زمی رضیو زمی یا به ما قبل داده دا میشه یا ساکن میمونه وابه هم ساکنه یا حسمش میشه میشه رضو این شد از این قاعدة الفعل المضارع من الناقص فعل المضارع است ناقص و اما المضارع فتسكن اللام منه في الرفع در حالت الرف لام املفیل ساکن داده دا میشه فعل مزاره در حال طرف بر وزن یفعولو یا یفعلو هست آخرش زمه داره ولی میگه زمه هست میشه ساکن داده میشه تدعو در اس بوده تدعوو یدعو ير در اس بوده یدعوو هم بوده یرمیو که زام حسمش، وأما المضارف فتسكن اللام منه في الرفع. ميجي مضارع لام الفيلش در حالة الرفع ساكن دادمش، دا وتحذف في الجزم. در حالة جزم لام حسمش. يدعو يرمي يخشى. كي وابي باش، كي ألفي كي ياي. لام الفيل از آخر حسمش زمان كمجذوم باش. يدعو اگر مجموعومش می کنیم میشه لم یاد رو.گررممی میشه لم یارم می یخشا میشه لم یخ ش الفعل فل و تفتح واب و یا و ف ن اما مزاره زمانی که منصوب بشه اگر واوی و یائی بشه باشه فتح میگیره. واوی مانند یاد اگر منصوب کنیم فتح میگیره، لن یاد اگر یایی هم باشه فتح میگیره لن یرمیه و توفتح الواو و یا فالنس وابو یا اگر مزارب واوی یا يا یایی بود در حالت نصف فتح میگیره و تثبت الالف به ها اما اگر الیفی بود به حال خودش باقی میمونه اعرابشون موقع تقدیری هست فتحه تقدیری مانند یخشا لن یخشا دیگه الیف سر جاش باقی میمونه فتحه دیگه نمید این هم از ق ويسقط الجازم والناصب النونات جازم و ناسب نون ها رو حذف میکنند ساقیت میکنند در فعل مزاره اون صيغه هایی که نون دارند يا يدعو يا اون صيغه هایی که نون دارند نون ها رو حذف میکنند سوا نون جمع المؤنث جز نون جمع المؤنث چون نون جمعه معنیز زمیر هست با نون های دیگه متفاوت هست نون های دیگه علامت اعراب هستند علامت رف هستند و زمانی که فعل مزاره منصوب بشه علامت رف دیگه برداشته میشه یعنی نون حس میشه و زمانی که مجزون هم بشه نون حس میشه فتقولو معنند لم یغزو اینجا واب هست شد در اسی یغزو هست لم که روش بیاد قبلا توضیح دادیم حرف الله هست میشه ولی در اون سیگه که نون هست نون هست میشه در اون سیگه هایی که نون نیست حرف الله هست میشه و در جم ما چیزی حسنه میشه لم یغزو لم یغزو لم یغزو الى آخر یا ای هم یرمی لم یرمی لم یرمیا لم یرمو لم ترمی لم ترمیا لم یرمی نه دیگه اینجا حصف نمیشه لم یرده میشه لم یرده با فتحه لم یرده لم یرده این حالت جا... مجزونش بود چون لم جازمه هست در حالت نصفش میشه لن یغزوه لن یرمیه ولن يرضى صابت ممكن توضيح الشرط شد الاخر وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين الاثن... ميجي لام الفعل در تسمية ودر جمع موانس حسف نمش در مصنع لام الفعل حسف نمش ماناً ده يرمي یرمیانی یرمی يرمي یعنی یا حسنه شد و تحذف فی فعل جماعت الذکور و فعل الواحدتی ولی لام الفعل در جن مذکر حس میشه در جن مذکر طور که در ماضی حس میشد در مزاره هم حس میشه چه مذکر غائب باشه چه حاضر یعنی ما نمیگیم یرمیانی یرمیونه میگیم یرمی یرمیانی یرمونه یغزو یغزوانی دیگه نمیگیم یغزوونه میگیم یغزوونه یک رو حس میکنیم پس لاملفل در مسنناها و در جمع ها حس نمیشه ثابت میمونه مانند یرمی یرمیانی یرمونه اینجا حس شد جمع مذکره ترمی ترمیانی یرمی نه اما میبینیم که در جمع معنیس حسب نیست پس میگه لاملفل در مصنع و در جمع مؤنث حث نمیشه و تحفف فی فعل جماعت الذکور در جماعت در جمع مذاکر حس میشه و فعل واحده المخاطبه و در مفرد مؤنث مخاطب حث میشه و تقولو مانند یغزو یغزوانی یغزونه در این حث شده در اسوده یغزو وونه تغزو تغزوانی یغزونه اینجا حسب نشده چون این جمع موننس هست تغزو تغزوانی تغزونا در این حسب شده چون این واب واب زمیره جمع مذکر یک وابی میگیره مثل یزره بونه این واب واب زمیره اما خود یغزو یک وابی داشته در تغزونا میبینیم که یک واب داریم پس لاملفل حسب شده در جمع مذکر غائب یغزونا و تغزونا و در تغزینه که مفرد موننس باشه در فل مزاره خاص وجود داره در بقیه صيغه ها نه تقظوان تقظونا اقظونا فيه لفظ جماعه الذكور والاناث في الخطاب ولغيبتي جميعا میگه مشترک هست لفظ جمع, جمع مذکر و جمع مذکر و جمع معنس لفظشون الازه ظاهری مثل هم هست تغزونه جمع مذکر هست تغزونه باز هم جمع موننس هست این الهاز لفظی اما الهاظ تقدیری میگه فرق هست بینشون لیکن تقدیر مختلفون تقدیر اینها فرق میکند فوزن المذکری یعفونه و تعفونه وزن مذکر در غائب يفعونا هست يغزونا بر وزن يعفونا هست ودر تغزونا تعفونا هست ووزن جمع الموانثي يفعولنا وتفعولنا وجمع الموانث كهامون يغزونا باشي بر وزن بر وزن تفعول است. این رو باری دیگر تکرار میکرم کفته لفظ جماعت و یستولی فیه لفظ جماعت الذکوری والاناسی فی الخطاب والغیبت جمیعا میگه لفظ جمع مذکر و جمع مواناس در مخاطبها و در غیبتها است. يَخْذُونَ يَخْذُونَ نِي این شد جمع مذکر غائب تغزو جمع مذکر غائب و جمع مؤنث غائب الٰهذه اللحظ لفظی مثل همند يَخْذُونَ يَخْذُونَ شبیه همان این حالت پیش اومده و در ها مخاطبها چونینند چنینند تَخْذُو تَخْذُونَ تَخْذُونَ تَخْذِينَ تَخْذُونَ تَخْذُونَ هم جمع مذکر الهاز لفظی و هم تغزونه جن موننس اینو علاقه کتابو بردارید تا این حرف منو متوجه شید الهاز ظاهری یغزونه جن مذکر غایر با یغزونه جن موننس غایر الهاز ظاهری لفظی مثل همن تغزونه جن مذکر حاضر تغزونه جن موننس حاضر الهاز لفظی همن میگه تغدیر ولی با هم فرق داری الفاظشون مشترکند مثل همند ولی در تقدیر ما میدیم که یغزونه جمع مذکر غایب بر وزن یفعونه هست و تغزونه جمع مذکر حاضر بر وزن تفعونه هست اما یغزونه یغزونه جمع معنیس غایب بر وزن یفعلنه هست و تغزونه جمله مذکر مؤنث حاضر بر وزن تفعل نه تقدیرش رو میگه ما اینجوری در نظر میگیریم در حالی که لفظی مثل همین و تقولو ما الان ده دیگر این دیگه برای برای یاردس گرمی گرمیانی یرمونه دیگه نمیگه یرمیونه چون لاملفل در جمع مذکر غائب حذف میشه همانطور که در ماضی هم حس میشد گرمی درمیانی یرمینه ترمی ترمیانی ترمونه در ترمونه هم حذف هست یا نمیبینیم بینیم ترمینه ترمیانی ترمینه در ترمینه هم حذف هست این یا یای مخاطب هست مفرد، موننس مخاطب هست مثل تزریبی اما یای خود ترمی کجا این حذف هست پس در یرمونه ترمونه و ترمینه لام الفیل حصد شده همانطور که قبلا گفتیم توضیح میدید که اصل یرمونه یرمیونه بوده و اصل ترمونه ترمیونه بوده و اصل ترمینه ترمی یینه هم بوده چونی میگه ففعله بهی ما فعله به با یرمیونه همون کاری شده که با ردو شده در ربو ما گفتیم که اصلش بوده را دی زمه از یا رفته به ما قبلش یا ساکن شده دو ساکن واب هم که از قبل ساکن هست یا حس شده شده ربو این یرمیونه دقیقا چونین هست یرمیونه زمه رو میدیم به ما قبل میشه یرمو هم یا ساکن هم واب یا برداشته میشه میشه یرمونه ففو ایلدهی ما فعله ربو همون کاری با میونه شده با ترمیونه که با رابیو شده بود که شده بود در آخرش رابو و حکم کل ما کانه ما قبل لامهی مکسوره و چنین هست حکم حرف کلمهی که ما قبل لاملفل کسره داشته باشد رضی یو ما قبل ای ای لاملفل چه کسر کسره هست. میگه هر کجا که ما قبل لاملفل در ناقص کسره بود همین حکم رو داره زمه رو میبریم به ما قبل میدیم و در نتیجه حرف الله لاملفل حس میشه نه و یهدی یهدیانی دیگه نمیگیم یهدیون میگیم دونه چرا چون دار ما قبل لاملفل الف کسره داره در یودی در یوناجی ما قبل لاملفل که یا هست کسره هست در یرتجی کسره است در ینبری کسره است در یستدی کسره در یراوی کسره در یعروری کسره لذا در نتیجه اگر هر از اینا رو صرف کنیم در جمع مذکرش به این حالت برخ. اون بود از یایی. اما در الیفی یربا يرضى یربایانی یرباونه تربا تربایانی یرباین تربا تربایانی ترباونه ترباین تربایانی ترباین. اربا نربا. این ناقص الیفی هست. و همیشه قبل از الیف فته هست. و همکذا قیاس كل ما کان ما قبل لامه مفتوح. هر کلمی که ما قبل لاملفل فتح باشی داشته باشه مثل یرده صرف میشه مثل یرده صرف میشه مانند یتمتاه که ما قبل لاملفل فتح هست در یتصابا تقلص یت الی آخر اونای که ما قبل لاملفل الف داشته باشن صرف مثل یرده هست ولفظ الواحدة المؤنسة في الخطاب كلفظ الجمع في باب يرمي ويرضح ميجي لفظ مفرد مؤنسة حاضر الواحدة المؤنسة في الخطاب معنى جمع دي جمحة در يرمي ويرضح میبینیم که میشه ترمین تر و ترمینه و تر خب ترمینه شبیه کدوم سیغه هست اگر ما بیایم دوباره صرف یردارو نگاه کنیم میشه یردا یردیانی اردون تر دا کرد تردا تر دا تر دیانی تر دا یعنی تر بینه اردا نردا ما دو تا ترده نداریم میگه در لفظ مصابین ولی در تقدیر با هم فرق میکنند مفرد موننس حاضر بر وزن تفعینا هست در یایی ترمین و در علفی بر وزن تفعی هست در یا بر وزن تفعی لا هست ترمین و در علفی بر وزن تفعینه مانند تردند و وزن الجمعی تفعلنا نه و تفعل و در جمعی و بر وزن تفعلنا نه هست یا مانند یا ای باری دیگر بر بگردید یرمی یرمیانی یرمونه ترمی ترمیانی یرمینه ترمی ترمیانی ترمونه ترمیانی ترمینا ترمینا ترمیانی ترمینه میبینیم که ترمینه مفرد محننس حاضر با ترمینه جمع محننس حاضر اللح لفظی مثل همان ولی اینجا میگه که یا ای تقدیرش تف ایل ولی در الیفی یا در اونی که ما قبلش فتحه با وزن تفعال نهست الامرو من الناقصی امر ناقص والامرو منها اغزو چون در امر مبنی بر حصف حرف ایله هست حرف ایله دیگه حصف میشه تغزو هست میشه اوغضو و هست میشه. عغضو ها اوغزو عغضزیغزو ها اوغزو است فل مزاره درست میشه. این واوی بود. ارمی ارمیا ارمو ارمی ارمیا ارین این هم کیایی هست، الفی مانند ار اردیا، اارباو اار اارربیا اارایی از مزاره درست میشه حرکت هاش مثل مزاره هستند. وإذا أدخلت عليه نون التأكيد زمانك نون تأكيد رباران ربيعي أعيدت اللام المحظوفة لام حسد بار مجرده مثلاً دار اغزو مش اغزو ون در ارمي مش ارميان در ارضي ارضا مش ارضا ين لذا لام الفعل بارجشت اسم الفاعل والمفعول من الناقص واسم الفاعل منها غازين اسم از یغزو در اسمشه یغزو غازیون در اسمشه غازیون ولی از اون جایی که واف در یک گوشه قرار گرفته قاعده داریم که واف در گوشه قرار بگیرد تبدیل به چی میشه؟ تبدیل بیا قاعده این نه که قاعده جزی واو در گوشه قرار بگیرد تبدیل به یا میگردند پس غازیون میشه غازی یون این یک مرحله مرحله بعدی اینست که غازی یون تنون گوش هست. با تنون نوشته میشه ولی تنون تنون نون ساکن خانده میشه غازی یون خب اینجا زمه بر یا سنگین هست زمه رو بر داریم، زمه رو که برداشتیم تنوین نون ساکن هست یا هم ساکن تنوین هم نون ساکن هست یا به علت التقای ساکنین هست میشه خانده میشه غازین پس غازیون میشه غازین اما اگر الفلام داشته باشه اون موقع تنوین نمیگیره میشه الغازی ولی زمانی که تنوین داشته باشه الفلام نداشته باشه غازیون میشه غازین در اصل بوده غازیون به علت این که واب در یک گوشه بوده و ما قبلش مکسور تبدیل به غازیون شده و از اونجا که زمه یا سنگین بوده زمه رو برداشتیم شده غازین مون ساکن یا ساکن حرف اله هست شده یعنی یا شده غازین. غازین غازیانی غازونه غازیتون اینجا در یک گوشه نیست غازی و تون چون بعد از واف تا هست چرا اینجا تبدیل یا شده واف میگه موننس فرعی از مذکر هست حکم مذکر رو میگیرد لذا بر اساس اون شده غازیتون تون غازیتانی غازیاتون و غوازن و کدالی که رامن در اس بوده را رامیون که زمه بریا سنگین هست زمه بر داشته میشه میشه رامین بعدش یا هست میشه میشه رامن رامیانی را رامیتون رامن رامیانی رامونه در جمع مذکر دیگه یا هست میشه همانطور که در ماضی و مزاره هست می شد رامیتون رامیتانی رامیاتون رادن هم چون هست خب بعدم این توضیح البته آورده و اصل و غازن غازیون بوده میگه اصل غازن غازیون بوده چون از یغزو درست میشه. و اسم فاعل بر وزن فائل هست مثل یزربو زاری یک طلو قاتل یا سرو ناصر یغزو در اصل. ولی قلبت الواو یا ان لی ما قبلها ها میگه واو به خاطر که در یک گوشه قرار گرفته و ما قبلش مکسور بوده تبدیل به یا شده و این یک قاعده کلی هست این یک قاعده کلی هست که هرگاه واو در یک طرف قرار بگیره و ما قبلش کسره داشته باشه تبدیل به یا می‌گردد. این قاعده کلی رو در سر داشته باشیم هرگاه واق در گوشه قرار بگیرد و ما قبلش کسره باشه تبدیل به یا میشود مانند غازی ول واق در یک گوشه هست ما قبلش هم هست میشه غازیون زمده روزی ها بر میداری میشه غازین نون ساکن یا ساکن یا حس گردن میشه به آزه این ما تمام مراحلی بود که ذکر کردیم کما قلبت فی غزیه همانطور که غزه و شده غزه با توجب قایدی که قبلن گفتیم در مجهول برواد فعلا هست غزه و باز هم چون واو در یک گوشه قرار گرفته و ما قبلش مکسور تبدیل بیار شده شده غزیه پس مجهول غزه میشه غزیه. منشول دعا میشه دعیه تو مقالو غازیتون خب میگه در مفرد در موننس مفرد چرا گفتن غازیتون یعنی وابو تبدیل بیا کردند. در حالی که اینجا واب در گوشه نیست آخرین حرف تا هست نه که واب قاعده میگه زمانی واب تبدیل یا میشه که در در گوشه قرار بوده و ما قبلش کسره در غاز و تن در گوشه قرار نگرفته آخرش تایه چرا اینجا میگه تبدیل یا شده لعن المؤنث فرع المذکری میگه بخاطر اینکه که اولا مؤنث فرع مذکره و تاو طارعتون دوما این تا طارع هست جزء از کلمه نیست و تقول في المفعول من الواوی این شد از فائل اما بحث مفعولش مفعول وابی مثل یغزو اگر میخواهیم ازش اسم مفعول درست کنیم خب یک وابی خود کلمه داره یک وابی اسم مفعول هست که ما میاریم دو تا وابی میشن میشه مغزو وون واب در واب ادغام میشه میشه مغزوب وون و من الیایی دریایی یرمی هست یک یا داره و یک وابی اسم مفعولو ما میاریم مثل یا ذریب میشه معذلوب منصور اینجا هم یرمی باید بشه مرموی مر موی مر موی میگه اینجا واب تبدیل بیا میشود و ما قبلش کسره میگیرد واب دقت داشته باشیم واب و یا هرگاه با هم جمع شوند این قاعده رو هم در ذهن داشته باشیم هرگاه واب و یا با هم جمع شوند و اولیشون ساکن باشد در این حالت واب تبدیل به یا شود این قاعده رو دروتر خود کتاب آورده پس مرمیون در اصل بوده مر مرمویون مرمویون اینجا واب با یا یک جا در یک کلمه جمع شده قاعده کلی داریم جو چون جلوتر میگه دیگه تکرار رویم کنم به قلب در مرمویون واب تبدیل میگه شده و ما قبلشم کسره گرفته یا در یا ادغام شده شده مرمیون پس اسم مفعول از ناقص یایی همیشه تونین هست یارمی اسم فلش میشه مرمی اسم اگر وابی می بود شد مدعوب مغزوب چرا میگه در مرموی واب تبدیل بیا شده؟ ال واب و اذا یا في جتمعه فی کلمه یکی برای اینکه واب و یا هرگاه در یک کلمه جمع من والولمینهم ساکنه و اولی ساکن بود قلبت ال واب و یا ان واب تبدیل بیامشه این قاعده کلی است و ادغمت الیا و فلیا و در مرموی بعد از این که واب تبدیل بیا شده مسلم است که یا یا ادغام میشه و تقول فی فعول من الواوی عدو و من الیای بغی همچنین زمانی که ناقص واوی بر وزن فعول باشد ناقص واوی بر وزن فعول باشد مانند عدو یکی واو لا ملفل هست یکی واو که بر فعول هست اینجا دو تواب در هم ادغام میگردن میشه ادوب و در یایی بغوی بغوی اینجا هم بر اساس قایدی که الان گفتیم و تبدیل دیل بیا میشه و یا در یا ادغام میشه که میشه بقی در اسبوده بغوی و بر وزن فعیل هم بل وزن هم همين هالك بيش بيات مانند السابوي كمشي سبي وداريائي مشي شري خدش هز قبل ياحست المزيد فيه من الناقص ناقص مزيد فيه أحكي أحكامات والمزيد فيه تقلب وابوه ياحن در المزيد فيه هم واف تبديل بيامجي چرا لأن كل واب كل واب إذا وقعت رابعة فصايدا چون هر واوی در حرف چهارم یا بالاتر پنجم شیشم قرار بگیره و لم یکن ما قبلها مضموما و ما قبلش زمه نداشته باشه قلبت یا ان تبدیل بیا این قاعده کلی هست هرگاه واو در شماره چارم قرار بگیرد مثل غا که قبل که توضیحش رد شد هرگاه واف شماره چارم کارند بودد یا بالاتر از چارم یعنی حرف چارم یا پنجم یا شم چارم بالاتر از چارم و ما قبل واف زمین داشته باشه قولی بطیان تبدیل بیا میشه و لم ما قبلها مجموعا قولی بطیان ما قبلش مزموم نباشه تبدیل بیا میشه فتقولو اعطا اعتا در اسبوده اعطا و از اون جایی که واف حرف چهارم بوده و ما قبلش هم زمنه بوده تبدیل بیا شده شده اعطایه و قاعده اولین قاعده که خوندیم گفتیم یا متحرک ما قبل مفتو تبدیل چی میشه؟ تبدیل به علیف لذا شده اعطا اعطاوه شده اعطایه سپس شده اعطا یعطی اینکه هم مزارش هست در اس بوده یع تی و و از اون جای کواف شماره چار هست و معقبش زمه نیست شده یو تی دیگه این تبدیل به فتح نشده به الف نشده چرا؟ چون معقبش فتح نیست موقعش کسر هست اگر معقبش فتح بود تبدیل به الف نشد پس اع تا تی توضیح دادم که چرا در اعطا واب تبدیل به الف شده در از تبدیل به شده ولیای متحرک ماخ تبدیل به الف شده در يعطي که واف تبدیل به شده در هر دو تا به علت این که حرف واف شماره 4 هست اعتدا اعتدای اعتدیه هم چنین است استر شای استرشی شا دقیقاً هم چنین هست و تقول مع الضمیر زمانی که ضمیر بیاد اعتدت اعتدیتو طررش تو که در قعدده قبلاً قبلا ذکر کردیم که دوباره به اصلش برمیگرده در سیقه های بعدی و کذیک که تغازه نه و ترا مثل غذا غذا در سیقه اول تبدیل به الف شده و ولی در سیقه بعدی دوباره به اصلش برگشته. در رما یا تبدیل به الف شده و سیقه بعدی دوباره به یا برگشته این ع تو اعتده تو تو چون این هست تغااض ها و تراجينا. اینا بودند، قواعدی مرتبط به متللم یا همون ناقص امیدوارم که ان فهمیده باشید موفقی و پیروز باشید